اف برنامه از گروه جوان و فرهنگ به نام خدا سلام بر شما همراهان برنامه هزار افسان. طول بار خاطراتمون خالی از فسانه نیست چه بسیار شبهایی که گوش جان به افسانه‌ها و داستان‌های های دلشین پدر و مادر سپردیم و در فسون محصور کننده افثانه ها خواب هزار رنگ دیدیم افثانه که ما رو با تمام سادگیهاش به سفرهای رنگین و خیالانگیز و دنیاهای پر رمز و راز به دنبال خودش می و از این ره حقایقی رو برای تک تک ما روشن می کردن. در این مجال شبانه افسانه ای رو از ایران زمین تقدیم شما میکنیم این افسانه نامش افسانه داد و بیداده. برگرفته از کتاب افسانه‌های دیار بهار گردآوری سید حسین میرکاظمی که امیدواریم از شنیدن این افسانه لذت ببرید. در زمان بسیار قدیم در یک آبادی کوچک دو برادر در همسایی هم در نهایت فقر و تنگ دستی زندگی می‌کردند. برادر بزرگتر که چارشونه بود و چاق جمشید نام داشت و برادر کوچکتر که ریز بود و استخونی رشید یه روز رشید رو کرد به برادر بزرگش جمشید و گفت «ای hey برادر من دیگه از این نداری خسته شدم دیگه نمیتونم بیش از این توی روی زنم نگاه کنم بعد آهی کشید و ادامه داد من قصد دارم همین امروز برای پیدا کردن کاری به چند آبادی بالاتر برم و از برادرش جمشید پرسید تو هم با من میای برادرش جمشید که انگار منتظر چون این فرصتی بود به تندی گفت البته که میام راستش منم از این وزن نداری و بیکاری خسته شدم و دیگه تحمل تحنها و سرزنشهای زنمون ندارم ساعتی بعد دو برادر از همسرانشون خداحافظی کردن و با هم به طرف آبادی بالاتر براف دادن. تا پنجه زرد و گرمش رو بر پهنی زمین انداخته بود که دو برادر خسته و نفس نفس زنان به آبادی بالاتر رسیدن لحظه ایستادن و چشمشون رو برای استراحتی کوتاه به دنبال سایبونی به اطراف چرخوندن بالاخره سایبونی پیدا کردند و در زیر اون به استراحت پرداختند مردم آبادی کم و بیش در حال گذر بودن و گاهی هم از سر کنجکاوی به اونها چشم دوختن چند دقیقه‌ای که گذشت مردی به دوتا برادر نزدیک شد از اونو پرسید شما تازه به این آبادی اومدین؟ دو برادر تصیح کنن سری تکون دادن و بعد از مرد خواهش کردن اگه کاری سراغ داره اونا بگه مرد که دنبال کسی این تا زمین بایرش رو آباد کنه آباد دو برادر رو به طرف محل کار برد و به اونا دوتا بیل داد و گفت تمام این زمین رو خوب بکنید من غروب برمی گردم مرد اینو گفت و از دو برادر فاصله گرفت و دور شد دو برادر هم بیل به دست کندن زمین شدند چند ساعتی از کندن زمین نگذشته بود که رشید برادر کوچکتر همینطور که داشت بیل میزد، یهو بیلش به چیزی خورد و جرینگی صدا داد رشید لحظه ای دست از کار کشید و دوباره بیل رو توی زمین فرو کرد و این بار هم بیل به چیزی خورد و جرینگی صدا داد رشید تند و تند زمین رو کند و چشمش به تکه از یک کوزه سبز رنگ خورد با خوشحالی خاکهای اطراف رو کنار زد و کوزه سبز رنگ رو از دل زمین بیرون آورد چشاش از چیزی که میدید گرد گرد شد بله توی کوزه پر بود از سکه های تلا رشید با دست برادرش جمشید رو که در فاصله دورتر در حال کندن زمین بود صدا زد آی آی برادر بیا زود بیا اینجا عجله کن جمشید که فریاد برادرش رو شنید سراسیمه و با انجله به طرفش دوید و وقتی کوزه پر از سکه های تلا رو در دست رشید دید از خوشحالی و هیجان فریاد کشید تلا تلا دیگه ثروتمند شدیم ثروتمند برادر کچکتر که همون رشید باشه در حالی که برق شادی توی چشماش افتاده بود با حیجان گفت میبینی برادر میبینی تو این کوزه پر از سکه های و بعد از خوشحالی فریاد کشید تلا تلا سکه های تلا برادر بزرگتر جستی زد و فورا دستشو بر دهان برادر کچکتر گذاشت و آرون گفت ساکت باش ممکنه کسی صدای تو رو بشنوه و بعد اضافه کرد باید هر چیز از اینجا دور بشیم ممکنه کسی بیاد و ادعا کنه این سکه ها مال اونه اون وقت تموم ثروتمون به باد میره برادر کوچکتر که آروم شده بود کوزه یک پر از طلا رو توی توبرش پنهان کرد و به همراه برادر بزرگترش با سرعت از اونجا دور شد. دو برادر که از آبادی دور شدن در نیمه راه از حرکت ایستادن جمشید که نفسش به هن و هن افتاده بود و عرق از سر صورتش سرازیر شده بود رو کرد به رشید برادر کوچکترش رو گفت خب حالا که حسابی از آبادی دور شدیم بهتر سکه ها رو تقسیم کنیم رشید گفت باشه من یه مقداری از این سکه ها رو به تو میدم و بقیهش رو برای خودم جمشید با لحن اعتراضا میزی چلامون قطع کرد و گفت فقط یه مقدار؟ رشید با خونسردی جواب داد البته چون این من بودم که سکه ها رو پیدا کردم تو جمشید نگاه خشمالودی به رشید انداخت و گفت نه نه نه نه من این رو قبول ندارم و بعد روش رو از برادرش برگردند رشید که دل مهربون و رحیمی داشت به روی برادر بزرگترش لبخندی زد و گفت باشه حالا در نکن نسمال من نسمال تو و بعد شروع به شمردن سکه های تلا کرد جمشید که برق و درخشش سکه های تلا چشماش گرفته بود وسوسه شد و تمه برش غالب شد و زیر لب با خودش گفت چطوری میتونم تموم این سکه های تلا رو صاحب بشم به هیکر درشت و تنومندش نگاه کرد دید که از برادر کچی پر پرزورتر و قویتره و راحتی میتونه برادرش رو بکشه و تموم این سکه ها رو صاحب بشه خلاصه جمشید با این فکر شیطانی به طرف رشید که در حال نصف کردن سکه ها بود رفت رسید برادرش در حال شمردن سکه ها بود رشید با دیدن برادرش گفت بیا تموم شد نصف مال من اینم سهم تو نصف نصف جمشید که چشماش و خون گرفته بود و کینه و حسد و تمام وجودش رو فرا گرفته بود به رشید حمله کرد و جلوی اونو فشرد رشید که تعجب کرده بود با صدای ای گفت چی کار این کار برادر دارم؟ دارم خفه میشم جمشید خندی سر داد و گفت <تصفيق> چه بهتر منم میخوام خفه بشی رشید با همون صدای خفه نانید آخه آخه آخ، آخ برای چی جمشید با حرس و ولع گفت میخوام تمام سکه ها مال من باشه فقط مال من و گلوی رشید رو بیشتر و بیشتر فشو رشید که دیگه نای نفس کشیدن نداشت برید بریده با التماس گفت که... کارن کار زکو مال مال تو من ناخوش جمشید پوزخندی زد و گفت ولی تو باید کشته بشی چون اگه این کارو نکنم تو همه جا آبروی من میبری رشید التماس کنان به دست و پای جمشید افتاد و گفت قسم میخورم قسم میخورم که در این برد به کسی حرف نزنم حتی بزنم قسم میخورم و موجی از خواهش و تمنا و مظلومیت توی صورتش نمایان شد ولی جمشید گوشش به این التماس ها بدکار نبود و گلوی رشید رو با تمام قدرت فشار داد رشید که احساس کرد زمان مرگش فراری رسیده با ناله گفت برادر بس بزار حداقل سفارشی به تو بکنم جمشید گفت بگو هرچی میخوایی بگو و اون وقت گلوی رشید رو رها کرد رشید در حالی که گلوش گلوشو با دست مالش میداد با ناراحتی گفت ای برادر تو میدونی که زن من بارداره و تا چند ماه دیگه فارغ میشه آه، ازت خواهش میکنم وقتی زنم فارغ شد اگه فرزندم پسر بود اسمشو بذار داد و اگه دختر بود بیداد. جمشید با بی‌حوصلگی گفت بشه این کارو میکنم و بعد دوباره گلوی رشید رو فشرد قدر فشرد و فشرد تا دست و پای رشید بی جون شد و بر زمین افتاد اون وقت جمشید کوزه پر از طلا رو برداشت و به طرف آبادی خودش برای روزی گذشت زن رشید که از نیومدن همسرش نگران شده بود به نصد برادر شوهرش جمشید رفت و ازش پرسید چرا برادرت رشید با تو نیومد؟ شما که با هم از اینجا رفتیم؟ جمشید جواب داد ما تا نیمه راه با هم بودیم بعد رشید راهش از من جدا کرد و به آبادی دیگه ای رفت بعد هم به ظاهر زن برادرش رو دلداری داد که همسرش به زودی و زن هم نومید با قدم های آهسته از خونه برادر شوهرش بیرون اومد و به طرف خونه شرکت کرد. چند ماهی از این ماجرا گذشت. زن رشید که کاملا نگران شده بود باز هم به سراغ برادر شوهرش رفت و ازش خواهش کرد تا به دنبال شوهرش بره و از اون خبری به دست بیاره. ولی جمشید که حالا با فروش سکههای طلا وضع خوبی پیدا کرده بود به حرف زن برادرش اهمیتی نداد و فقط اونو دلداری داد که بالاخره یه روزی شوهرش برمیگرده زن این بار هم نومید از خونه برادر شوهرش بیرون مند. فردای اون روز زن رشید فارغ شد و قاصدی از راه اومد و به جمشید خبر داد که صاحب دو برادر کاکل کاکلزری شدی و زن برادرت میخواد تو رو ببینه. جمشید به ناچار برخلاف میل باطنیش به دیدن زن برادرش رفت. زن رشید رو کرد به برادر شوهرش و گفت حالا که رشید نیست تو بزرگ این خونواده ای. و باید برای بچه های برادرت اسمی انتخاب کنی در این لحظه جمشید بیاد آخرین سفارش برادر کوچیکش افتاد و با لحنی به ظاهر ناراحت گفت لحظه ای که من و رشید از هم جدا می شدیم رشید به من سفارش کرد که اسم بچه رو اگه پسر بود داد و اگه دختر بود بیداد بذاری حالا که دو به دنیا آمدن بهتر اسم رو بذاری داد و بیداد زن هم قبول کرد و اسم اونا شد دادو 15 سال از این ماجرا گذشت و داد و بیداد که حالا دو جوان برومند شده بودن در کنار خونشون در حال باغبونی بودن از غذا پادشاه با وزیرش برای تفریح و گردش به اون حوالی اومده بودن همینجوری که به گردش مشغول بودن صدای زنی رو شدیدن که میگفت آهای داد دو. آهای بیداد دو. بیای اینجا دو. پادشاه از شنیدن چون این اسمهایی به فکر فروه. و بعد رو کرد به وزیرش و گفت داد و بیداد چه اسم های عجیب و غریبی و بعد با کنجکاوی از وزیر پرسید تو فکر نمی کنی باید راز و رمز و علتی در این اسم ها باشه؟ وزیر فکری کرد و جواب داد بله قربان به نظر منم اسم های عجیب و غریبین حتما باید علتی در کار باشه پادشاه که کنجکاویش بیشتر شده بود دستور داد تا فورا مادر داد و بیداد رو به کاخ پادشاه بیارند. وزیر هم اطاعت کرد و در عرض چند دقیقه مادر داد و بیداد به حضور پادشاه رسید مادر و بیداد در حالی که از ترس به خودش میلرزید، آروم وارد کاخ پادشاه شد و به گوشه ای رفت و حیرت زده همه چیز رو زیر نظر گرفت پادشاه که متوجه ترس و حراس زن شده بود آروم به اون نزدیک شد و گفت نه ترس با تو کاری نداریم فقط و نگاهی به وزیر انداخت و وزیر ادامه داد فقط می بدونیم به چه علتی اسم بچه گذاشتی داد و بیداد همین زن که بیاد شوهرش افتاده بود با چشمهای اشکبار و صدای بغزالود سفارش شوهرش رو که به عموی بچاش کرده بود برای پادشاه و وزیر تعریف کرد پادشاه با شنیدن این ماجرا دستور داد تا برادر شوهر زن یعنی جمشید رو احزار کنند جمشید هم بعد از چند دقیقه وارد کاخ پادشاه شد پادشاه مشکوکانه به جمشید نگاه انداخت و پرسید بگو ببینم برادر کوچکتر تو به چه علتی به تو سفارش کرد اسم بچه هاشو بذاری داد و بیراد جمشید که احساس خطر کرده بود از ترس زبونش بند اومد و نتونست حتی کلامی به زبون بیاره وزیر با صدایی محکم پرسید چرا جواب نمیدی؟ بگو وگر نه؟ جمشید کلام وزیر رو قطع کرد و با التماس گفت قربان باور کنید من علتشو نمیدونم باور کنید راست میگم پادشاه که میدونست جمشید دروغ میگه فریاد زد زود باش حقیقت رو بگو و وزیر اضافه کرد وگر نه دستور میدیم چار شد کنن و جمشید که راه گریزی نداشت با سرفکندگی تمام این چه بین خودش و برادر کوچکترش اتفاق افتاده بود رو برای همه بازگو کرد مادر داد و بیداد که انتظار شنیدن این ماجرا رو نداشت از هوش رفت و بر زمین افتاد به دستور وزیر چند ندیمه اومدن و اونو به هوش آوردند پادشاه که از کشف این حقیقت تلخ سخت به فکر فرو رفته بود آهی کشید سری تکون داد و گفت آه میدونستم میدونستم که داد و بیداد فریاد دادخواهیهٔ آدم مظلوم و بیگناه واقعا مظلوم و بعد دستور داد تا تمام ثروت جمشید رو به داد و بیداد و مادرشون بدن و حکم کرد تا جمشید رو به زندان ببرن و تا آخر عمر گوشه زندون بمونه تا به سزای عملش برسه. افثانه ای ایرانی تحت نام داد و بیداد رو براتون نقل کردم این افسانه ها از کوهندترین ایام از وقتی که مادر یا مادر بزرگ یا پیر سال ای در جهان بوده وجود داشتن افسانه ها بخشی از فرهنگ و هویت هر قوم و ملتی هستن های هر قوم و ملتی ویژگی هایی دارن که اونها رو از افسانه های ملل دیگه متمایز میکنه جان کلام این که گنجینه ی های ارزشمند ایران بزرگ رو پاس بداریم این برنامه کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالح پور اجرا مهران دوستی موسیقی حسین اولیاوش و تهیه کننده زهرا عبدالله زاده تا افثانه دیگر بدرود